حاتم تایی و خانه هفت در این داستان نقلیست از اشرف محمد خمین از عراق حاتم تایی مهمون خونه ساخته بود که هفت تا در داشت و هر کس به شهر می اومد می اونجا و غذای رایگان میخورد یه روز درویشی به شهر اومد که متح علی علیه السلام رو می گفت. حاتم به او گفت بیا خونه ما و غذا بخور و بعد برو درویش رفت و غذا رو خورد و به راه خودش رفت در شهر که میچرخید شنید همه از بخشندگی حاتم سخن میگن درویش پیش حاتم برگشت و به اون گفت حاتم تو چرا اینقدر بذل و بخشش میکنی حاتم گفت اگه میخوای دلیل بخشندگی من رو بدونی باید بری به یه شهر دیگه که شش ماه راه با شهر ما فاصله داره پادشاه اونجا یه دختره هر کس سر سفره اون میشینه غذا که میخوره دست آخر ظرف غذا رو که از تلاست با خودش میبره برقصه اون دختر رو بپرس و برگرد و برای من تعریفش کن اون وقت منم ماجرای بزل و بخششم رو برای تو میگم درویش ذخیره راهش رو برداشت و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا به همون شهر رسید سراغ مهمون خونه دختر رو گرفت رفت و نهارش رو خورد و ظرف غذاش که از طلا بود رو با خودش برداشت و رفت فردا دوباره به مهمون خونه رفت و از دختر پرسید چرا اینقدر بزل و بخشش میکنی؟ آخه مگه میشه آش رو با جاش بدی؟ اما از دختر جوابی نشنید پس رفت توی کوچه و بازار پشت سر دختر بدگویی کرد که اون سخاوت نداره همه مردم تعجب کردن و گفتن این همه سخاوت رو نمیبینی؟ پس شکایت اون رو پیش دختر آوردن دختر درویش رو احزار کرد و گفت چرا گفتی من سخاوت ندارم؟ درویش گفت اگه تو سخاوت داری همسر من شو دختر گفت همسر تو نمیشم مگه اینکه بری به یه شهری که شش ماه راه با ما فاصله داره و قصه پادشاه و پسرش رو که اونجا هستن رو برام بیاری. توی اون شهر پادشاهیه که یه پسر داره که توی باغ قدیمی زندگی میکنه. هرچی پدرش نامه میفرسته که پسر به دیدنش بره نمیره. اگه راز اونا رو برای من فاش کنی منم همسرت میشم. درویش رفت و رفت تا به ملک پادشاه رسید. دید بله. پادشاه هرچی برای پسرش نامه مینویسه که من و مادرت دوستت داریم و میخوایم تو رو ببینیم پسر نه تنها نمیاد بلکه نامه رسونا هم میکشه پادشاه برای پسر نوشت که پس ما هفته یه مرتبه شیری از طلا میاریم سر قبرستونا تو از باغ بیا بیرون و این شیر رو نصف کن و برو پادشاه میخواست به این بهون پسرش رو هفته یه بار ببینه درویش این مطلب رو شنید اما میخواست جوابش رو از انسانی کامل و عاقل بشنوه پس رفت توی کوچه و خیابون دید پیرمردی دلا دلا داره میاد از اون پرسید: این حکایت شیر طلا چیه که پسر پادشاه باید نصفش کنه پیرمرد مرد حوار کرد و گفت این درویش میخواد فسق و راز ما رو از شهر بیرون ببره. ریختن سر درویش و تا میتونستن اونو زدن. نزدیک غروب صاحب خونه درویش اون رو زخمی و خونین دید. اونو برد خونه و یک هفته دوا درمونش کرد. درویش فکر کرد خوب از یه بچه نادون بپرسم همین موقع پسر پادشاه سوار گاو سیاه اومد و شیر رو نصف کرد و رفت درویش از بچه نادون پرسید این قضیه گاو و این شیر طلا چیه؟ بچه شروع کرد به داد و بیداد و دوباره همه مردم ریختن سر درویش و اونو زدن دوباره صاحبخونه اومد اونو نجات داد و برای دوا و درمون اونو برد خونه. صاحبخونه به درویش گفت چه کار داری راز این گاو و این شیر طلا چیه؟ کسی بهت جواب درستی نمیده. هفته سوم خود درویش رفت تا از نزدیک همه چیز رو بررسی کنه. از سوراخ دیوار چشم گذاشت و دید پسر پادشاه اومد و شیر رو نصف کرد و رفت توی باغ خرابه. درویش رفت بالای دیوار باغ. دید که جوون گاو سیاه رو که با خودش آورده بود بست به درخت و بنا کرد حیوان بیچاره رو با چوب زدن. اونقدر گاو رو زد که زخمی شد و ناله کرد و پسر پادشاه هم از خستگی و بیحالی یه گوشه افتاد درویش از دیوار پرید اون طرف رفت سر پسر پادشاه را رو روی زانوش گذاشت و اونو تیمار کرد وقتی پسر به هوش اومد عصبانی شد و گفت تو به چه جازه ای وارد باغ شدی باید بکشمت درویش مجبور شد ماجرا رو براش بگه دوون گفت من رازم رو واسه تو نمیگم مگه اینکه قصه ای رو برای من بیاری یه شهری هست که با شهر ما شیش ماه راه فاصله داره یه مردی اونجاست که زینه اسب میسازه اما نه از این زینای معمولی زینای پوشیده از نگینای گرانبها برای مشتری دم قروب که مشتری اومد پول مشتری رو پس میده و دعواش میکنه و زین رو پس میگیره با چکش خرابش میکنه و میندازه گوشه مغازه. اگه راز اون رو برای من بیاری منم راز خودم رو برات میگم. خلاص درویش رفت و رفت تا به شهر مرد زینساز رسید. دید بله. همینطوره پس دنبال مرد زینساز راه افتاد و به اون گفت من قریبم منو به خونت ببر زینساز موافقت کرد به خونه که رسیدن به اون گفت من شاهد کار امروز تو بودم برای چیزین اسب رو پس گرفتی و اون رو شکستی مرد گفت تا چشم تو کور بشو و فوزولی نکنی مهمون هستی باش، دنبال فوزولی نباش. درویش ماجرای خودش رو برای اون گفت. مرد زینساز گفت، یه شهری هست که یه نفر اونجا از آن میگه. این مرد هر وقت میره از آن بگه، الله اکبر رو که میگه میخنده. اما وقتی میگه اشهد انم محمدن رسول الله، بنا میکنه به گریه کردن اونقدر گریه میکنه که نگو و نپرس اگه حکایت گریه کردن و خندیدن اون رو برام بیاری منم حکایت خودم رو برات میگم درویش رفت و رفت تا به شهر ازانگو رسید گشت و گشت تا وقت ازان رسید دید یه نفر رفت سر گل دسته تا ازان بگه الله اکبر را که گفت، زد زیر خنده و هر وقت به اشهد و ان محمدن رسول الله رسید، دستمالش رو در آورد و های های گریه کرد. درویش بعد از اذان رفت، پیش اونو از اون خواست شب رو مهمون خونه اون بشه. شب از اذانگو حکایتش رو پرسید و ماجرای خودش رو براش تعریف کرد. از آنگو گفت یه شهری هست که شش ماه با شهر ما فاصله داره. اونجا یه پلوی هست که دیگش رو بسته کنار دریا. روزی صد من برنج پخت میکنه و بعد از اینکه روغنش رو میریزه و برنج رو آماده میکنه دیگ رو میریزه توی دریا. هر وقت حکایت اون مرد رو برام آوردی منم راز خودم رو بهت میگم. درویش رفت و رفت تا به شهر مرد پلوی رسید. رفت پولویی رو پیدا کرد و ماجرای خودش رو برای اون گفت. پولویی گفت یه شهر هست که پادشاهش با دخترموش ازدواج کرده. یه قصر با دیوارای خیلی بلند داره. خودش غذا درست میکنه و میخوره. تا غذا رو میده به یه طول سگ بعد که طول سک سیر شد باقی موندش رو به دخترموش که زنشه میده زنش رو توی زنبیل بالای درخت بسته وقتی زنش غذاش رو میخوره اونقدر با تازیانه اونو میزنه که از حال بره اگه رفتی و راز اون پادشاه رو برام آوردی منم داستان خودم رو بهت میگم راستی اسم اون پادشاه نصراست و اسم زنش گل درویش توشه‌ای رو برداشت و رفت و رفت تا خسته شد پای درختی بلند که چشمه‌ای زلال کنارش جاری بود نشست صدایی به گوشش خورد صدای جیغ جیغ بود سرش را بلند کرد دید بچه های هستند بله اجده اومده بود تا اونا رو بخوره اونا هم از ترس فریاد می‌کشیدن و جیغجیغ را انداخته بودن درویش هم که توی کوه و کمر بزرگ شده بود و خیلی قوی بود شمشیرش را بلند کرد و زد وسط کمر اجده ها. بعد گرفت خوابی پای چشم زیر درخت دوباره صدای جیگ جیگ بلند شد سرش رو که بلند کرد دید سی سنگ بزرگی برداشته و الانه که بندازه روی سرش اما بچه ها گریه میکنن که نکشش اون جون ما نجات داد سی که فهمید بچه را رو هر سال اجده ها میخورده از درویش تشکر کرد و گفت هر جا بخوای تو رو میبرم و چند تا از پرا من به تو میدم هر وقت که به من احتیاج داشتی یکی از پرا رو آتیش بزن تا بیام و کمکت کنم درویش خوشحال شد و به سیمرغ گفت منو ببر به قلعه گل و را سیمرغ گفت چشم من اونجا رو کامل میشناسم. درویش رو سوار بر بالاش کرد و به قلعه برد. درویش رو وسط قلعه روی زمین گذاشت. درویش دور و برش رو نگاه کرد و دید سردر قلعه پر از آدمه. با خودش گفت: حتما اینا هم برای شنیدن حکایت نصرا اومدن. رفت سراغ پادشاه که همون نصرا بود. پادشاه گفت: تو چطور وارد قلعه شدی؟ درویش گفت خوش خوشان اومدم. نهار رو مهمون پادشاه بود. دید؟ بله. غذا رو که خوردن نسرا باقی مونده غذا رو جلی طول سگ انداخت. طول سگ که سیر شد زن بیل رو پایین آورد و پس مونده غذا رو جلی زن بیچاره انداخت و بعد از غذا تا میتونست زن رو زد و دوباره گذاشتش توی زنبیل و از درخت آویزونش کرد. درویش گفت: آخه چرا این کارو میکنی؟ جواب شنید: ماجرای من گفتنی نیست. هر کی دنبال این کار اومده سرش رو جدا کردم و گذاشتم بالای قلعه. درویش گفت: اول ماجرا رو برام بگو بد گردنم رو بزن. نصرا گفت: پدر من پادشاه بود عموی من هم که پدر زنمه پادشاه بود این دو برادر پادشاهی رو از پدرشون به ارس برده بودند. پس من و دخترم اون رو عقد کردن تا سلطنت یکی بشه من و اون هم از کوچیکی عاشقه هم بودیم و با هم قرار گذاشتیم که اگه اون زودتر بمیره من زن نگیرم و اگه من زودتر بمیرم اون دیگه شوهر نکنه خلاصه پدر و مادرامون که فوت شدن من پادشاه شدم مدت ها گذشت تا دخترمون که زنم بود مریض شد من دبا و درمونش کردم تا خوب شد اما مدتی بعد که من مریض شدم دیدم دو تا از اصف های دوست داشتنی من که اسمشون باد و بارون بود روز به روز لاغرتر می شدن ماجرا را از قلام پرسیدم قلام گفت خانوم هر شب یکی از اسبار و سوار میشه و از استبل میره بیرون گفتم مگه نگفتم غیر از خودم به کسی اسب ندید قلام گفت چه کنم با مهر شما حواله می آورد و منم بهش اسب می دادم شب حواسم رو جمع کردم تا بفهمم قضیه چیه دیدم زنم همش مواظبه که خوابم ببره دفعه اول فهمید بیدارم دفعه دوم هم فهمید اما دفعه سوم فکر کرد خوابیدم پس قلمدونم رو برداشت و حواله نوشت و اون رو به مهر من امضا کرد و رفت سمت استبل و اسب رو برداشت و رفت منم اسب دیگه ای برداشتم و دنبالش رفتم اسب رو پای درختی بست و رفت توی غاری تو دل کوه و با چند نفر رقصید و خوش گذارند. منم طاقت نیاوردم و رفتم تا موچش رو بگیرم من رو که دید دعوام کرد و خواست من رو بکشه منم که مریض بودم و جون نداشتم تا از خودم دفاع کنم زنم چاقو برداشت تا من رو بکشه اما فریادی کشید و قدمی عقب رفت متوجه شدم همین طول سگ اون شب دنبالم اومده و داره پای زنم رو گاز میگیره منم فرار کردم باید دخترموم رو میکشتم اما این کارو نکردم میخواستم زجرش بدم تا به سزای اعمالش برسه حالا که راز من رو فهمیدی باید سرت رو جدا کنم. درویش گفت باشه اما میخوام دروکت نماز بخونم. درویش قبل از نماز از زیر بختش پری از پرهای سی مرغ رو در و آتش زد. تا نمازش تموم بشه سی هم رسید. درویش سوار سی مرغ شد و زنبیل رو هم از رو شاخه درخ برداشت و برد. نصر را هم که دید رازش فاش شده از قصه دق کرد و مرد درویش سوار بر بال سیمرغ رفت به شهر پلوی رفت کنار دریا و کنار دیک های برنج و از پشت سیمرغ پایین اومد پولویی گفت آهای درویش چه زود اومدی نکنه وسط راه پشیمون شدی و اصلا نرفتی. درویش گفت، نه، حکایت نسرا رو برات آوردم، اینم زنشه که توی زنبیل میبینی. بعد نشست و ماجرا رو از سیر تا پیاز برای مرد پلوئی تعریف کرد. پولویی گفت، حالا که قصه را و زنش رو برام گفتی، منم قصه خودم رو برات میگم. بچه که بودم مادرم هر روز یه قرص نون جو به هم میداد و من رو میفرستاد پی چرای گوسفندا منم گوسفندا رو نزدیک دریا میبردم اونا میچریدن و منم هر وقت گرسنه میشد نون رو در میآوردم که بخورم نصف نون رو خودم میخوردم نصف دیگشم خورد خرد میکردم و میریختم برای ماهیای دریا روزا همینطور گذشت و من بزرگ شدم یه روز مادرم بهم هم گفت برو کارگری و منم رفتم توی شهر برای کارگری چند روزی اصلا کارگیرم نیومد. تا اینکه دیدم مردی افزار یه قاطر دستشه و گوزفندیم کنارش علف میخوره مرد گفت امروز کارگر من میشی تا سقرون پول بهت بدم منم خوشحال شدم و قبول کردم گفت بیا بریم کنار دریا یه چشمه ای اونجاست سر این گوسفند رو ببر تا کباب کنیم و بخوریم رفتیم کنار دریا و من سر گوسفند رو بریدم مرد گفت برو از صندوقچه نمک و فلفل رو بردار و بزن به کباب سرم رو که تو صندوقچه کردم تا نمک بردارم هلم داد تو صندوقو در صندوق رو گذاشت شرقه دیگه گوسفند رو انداخت روی صندوق سیمور اومد و صندوق رو برداشت و برد به آسمون سیمور شرقه گوسفند رو از صندوق برداشت و انداخت روی کوه دیدم کوه پر از استخونای آدمی زاده ترسیدم و کوره راه رو گرفتم و اومدم پایین اومدم و اومدم داشتم میافتادم توی دریا که دیدم زیر پاهام نرم نرمه و غرق نشدم. توی آب رو که نگاه کردم دیدم همون ماهی های کوچولو حالا بزرگ شدن و باله‌هاشون هاشونو به هم چسبوندن و منو دارن میبرند سمت ساحل خلاصه نون دادن به ماهی ها حالا جواب داد تا اینکه یه روز خواستم تلافی کنم تغییر شکل دادم و ریشام رو تراشیدم و رفتم توی میدون سراغ همون مرد من رو نشناخت و دوباره پیشنهاد کارگری داد منم قبول کردم گوسفندی رو برداشتم و رفتیم کنار دریا سر گوسفند رو بریدم دو شقش کردم اما وقتی میخواستم فلفل بردارم کلک زدم و تاجر رو صدا کردم که ای مرد فلفل و ادویه نیاوردی مرد تعجب کرد و گفت مگه کوری درست بگرد همونجا توی اون صندوق چست اومد جلو که نشون بده نمک و فلفل کجاست تا سرش رو داخل صندوق چه کرد هلش دادم تو صندوق و درش رو بستم و شققه گوشت گوسفند رو, رو روی صندوق چه انداختم سیمر اومد صندوق چه رو برداشت و برد بالای کوه گوشت رو برداشت و صندوق رو رها کرد تاجر که افتاد روی قله کوه داد و بیداد را انداخت رفتم پایین کوه و با صدای بلند بهش گفتم اگه مال و منالت رو بدی به من منم میام کمکت میکنم تا از کوه بیای پایین خلاصه تاجر کاغذی در آورد و خطی نوشت و دار و ندارش رو به من بخشید کاغذ رو مور کرد و از کوه انداخت پایین فهمیدم تاجر کافر و برای عذیت مردم اونا را به دام مرگ میفرسته. منم کاغذ را برداشتم و اونو به حال خودش رها کردم. حالا من با مال اون به مردم کمک میکنم و چون دیگه فقیری تو شهر نیست به ماهی هایی که جونم را نجات دادنم کمک می کنم و قضا میدم درویش که قصه مرد را شنید سوار سیمرغ شد و از اون خداافظی کرد و رفت سراغ شهر از آنگو. وقتی رسید از آنگو رو دید. حالا احوال کرد داستان پلوی رو تعریف کرد. از آنگو گفت حالا که قصه پلوی رو برای من آوردی منم قصه خودم رو برای تو میگم. از آنگو قصهش رو اینجوری آغاز کرد. یه روز داشتم از آن میگفتم که دیدم یه عقاب گذاشته دنبال سر یه کبوتر. کبوتر اومد و تو آستین من قایم شد. منم از آن رو گفتم و خوشحال شدم که شام شبم رسید. رفتم خونه. میخواستم سرش رو ببرم که کبوتر گفت: اگه سر من رو ببری پشیمون میشی. من یه زن هستم و اون اقابم دشمن من بود و میخواست نابودم کنه من زن تو میشم به شرطی که هر کاری کردم تو هیچی نگی منم اون رو نکشتم اونم تبدیل به یه زن زیبا شد با هم زندگی کردیم تا اینکه بچه دار شدیم خدا پسری به همون داد موقعی که پسرم به دنیا آمد زن صدا زد ای شیر بیا، شیر از جنگل اومد و زنم بچه رو پرت کرد تو دهن شیر من هیچ حرفی نزدم شکم دوم رو که زایید پلنگ رو صدا کرد و گفت آی پلنگ، پلنگم از جنگل اومد و زنم بچه رو انداخت توی دهن پلنگ من خیلی ناراحت شدم بچه سوم رو که خدا داد زنم گرگ رو صدا کرد و بچه رو انداخت توی دهن گرگ. من عصبانی شدم و گفتم زن خونت خراب برای چین کارا رو میکنی؟ چرا بچه رو میندازی تو دهن این حیوانای درنده. در زنم گفت دیگه جای من اینجا نیست و رفت سمت بیابون. منم دنبالش رفتم. میخواستم برش گردونم خونه. اما نشد. تو راه تشنه شدم. از زنم آب خواستم. زنم گفت بچه اولت رو صدا کن. گفتم اون رو تو دهن شیر انداختی. گفت اون شیر نبود. به چشم تو شیر می اومد. اون دایه بچه منم ناباور و مردد پسر اولم رو صدا کردم. دیدم یه زن خیلی زیبا، دست پسرم رو گرفته و میان. فهمیدم زنم راست میگه. بچه دوم رو که صدا زدم دیدم پسر دومم با یه زن زیبا ظاهر شد. بچه سوم رو که صدا زدم دیدم با یه زنی اومد اما کلی گریه میکنه. به زنم گفتم پس چرا دوتا بچه بزرگم خوشحال و خندون هستن و این یکی اینقدر گریه میکنه؟ زنم گفت واسه اینکه تو سکوت نکردی و عجله کردی و عصبانی شدی و گریه کردی به همین دلیل این یکی اینطوری شد من از ترس دشمنامون بچه هام رو به این آدمها که مثل شیر و پلنگ و گرد بودن سپردم خلاصه هواسم به بچه ها بود که دیدم زنم ناپدید شد حالا هر وقت میرم از آن بگم یاد زنم میفتم اون موقعی که ظاهر میشه میخندم و اون موقعی که ناپدید میشه گریه میکنم. درویش که داستان رو شنید خداحافظی کرد و سوار سی شد و رفت به شهر مرد زینساز. اونو پیدا کرد و ماجرای از آنگو رو براش گفت. مرد زینساز گفت پس منم ماجرام رو برات میگم. من یه آدم فقیر و بیچاره بودم میرفتم بیابون خار میکندم و میفروخدم یه روز کنار چشمه آب بودم که دیدم صدای بال کبوتر میاد کبوترا نشستن کنار چشمه و چند تا زن زیبا از جلد کبوترا را بیرون اومدن و رفتن تو چشمه شنا کردن منم جلد یکی رو برداشتم وقتی خواستن برن جلد رو به اون زن ندادم و بهش گفتم باید زن من بشی. اونم قبول کرد. با هم اومدیم این امارت رو ساختیم و از تایفه جن کارگر رو بناوردیم تا بالاخره اینجا درست شد. یه روز که خدمه نبودن زنم میخواست بره هموم بهم به گفت آب رو جوش کن و سر من بریز. منم که نمیدونستم آب جوش رو باید با آب خنک ملایم کنم و سرش بریزم آب جوش رو ریختم سرش رو اونم کوله شد و سوخت و مرد من حالا برای سرگرمی خودم عکس زنم رو هر روز با اون مرصح ها روی زین اسب می تراشم و نقش میزنم وقتی که غروب میخوام اون رو به مشتری تحویل بدم این کارو نمی کنم پول مشتری رو پس میدم و زین اسب رو با چکش میزنم و داغونش میکنم و میندازم گوشه مغازه فردا این کارو با مشتری جدید هم تکرار میکنم من به پول مشتری احتیاج ندارم اونقدر از زنم برا مال و منال مونده که نیازی به پول فروش زین ندارم درویش قصه اون رو شنید سوار بر بال سیمرغ برگشت سمت پسر پادشاه که گاو سیاه داشت پسر پادشاه سوار بر گاو سیاه رفت و شیر طلا رو نصف کرد و برگشت به باغ و همون قضیه زدن گاو و بیحال شدن رو تکرار کرد درویش رفت و سر اون رو روی زانوش گذاشت و گفت من مدت ها قبل پیش تو اومده بودم و حالا قصه مرد زینساز و، مرد پلو و گل و نسرا رو برات آوردم. پسر پادشاه گفت اگه قسم رو برات بگم حتما تو رو میکشم. درویش گفت اشکال نداره میخوام قصه تو رو هم بدونم. پسر پادشاه آهی کشید و گفت من پسر پادشاه هستم. پدرم جز من اولاد دیگه ای نداره و من همه امیدشم. یه قصر یه اتاق داشتیم که همیشه دوست داشتم بدونم چه چیزی توی اون اتاقه که پدرم همیشه کلیدش رو بر و با خودش میبره یه روز کلید رو یواشکی از لباس پدرم برداشتم و رفتم در اتاق رو باز کردم دیدم فقط یه پرده کشیده شده که پشتش یه میز و یه صندلی هست و عکس هفت دختر هم روی دیوار نصب شده و یه کتاب هم روی میزه. من کتاب رو خوندم. دیدم با خوندن کتابا دخترا جون می گیرن. منم یکیشون رو گرفتم و نذاشتم بره. بهش گفتم تو باید زن من بشی. گفت به شرطی زنت میشم که چهل شبان روز این کتاب رو روی دستت نگه داری. اگه نتونستی زنت نمیشم. منم سی و نه روز این کتاب رو نگه داشتم تا اینکه یه پیرزن اومد و گفت کتاب رو بده من برات نگه دارم. تا کتاب رو بهش دادم کتاب رو قرد داد و شد همین گاوه سیاهی که میبینی. حالا من از روی پدرم شرمندم و برای اینکه کتاب رو به دست بیارم این گاوه سیاه رو اونقدر میزنم تا کتاب رو پس بده اما فایده ای نداره. درویش گفت اگه من کتاب را ازش پس بگیرم قول میدی منو نکشی پسر پادشاه گفت آره درویش سیخی در آتش داغ کرد و انقدر اونو تو بینی گاو فرو کرد تا گاو حرف بزنه ولی گاو حرف نزد دوباره اون رو داغ کرد و تو دهن گاو فرو کرد تا اینکه گاو مجبور شد کتاب را از حلقش پس بده درویش هم جون سالم به در برد پسر پادشاه با دختر عروسی کرد و برگشت پیش پدر پادشاهش درویش سوار بر سیمرغ شد برگشت پیش دختر سخاوتمند و همه ماجراهای پسر پادشاه و گاو سیاه را براش تعریف کرد درویش گفت من ماجرای پسر پادشاه رو برات آوردم حالا تو ماجرای خودت رو برام بگو دختر گفت چون مرد زرنگی هستی با تو ازدواج میکنم بعد از عروسی درویش متوجه شد که یک گوی طلا روی دماغ دختر چسبیده از دختر پرسید ماجرای این گوی طلا چیه؟ دختر گفت ما سه تا خواهر بودیم که مادرمون رو از دست دادیم و با پدرمون زندگی میکردیم. یه روز درویش اومد در خونمون و به پدرم گفت من زن و بچه ندارم. یکی از دخترات رو بده به من. پدرم هم قبول کرد و به خواهر اول گفت اونم قبول کرد و زن درویش شد. بعد یه هفته درویش اومد و گفت زنم مریض شده. دختر دوم رو بده تا برای پرستاری زنم ببرم. پدرم قبول کرد و خواهر دومم با درویش روانه شد یه هفته بعد درویش دوباره اومد و گفت دختر دومیهم مریض شده دختر سومی رو بده تا برای پرستاری دوتا خواهر ببرم وقتی خوب شدن سهتاشون رو میارم. من چون زیرک بودم برای پرستاری را رفتم اما تو جاده دیدم درویش رفت سمت کوه جادهها منم دنبالش دیدم رفت سمت یه قلعه بزرگ و کلید انداخت و رفت توی قلعه. در یه اتاق رو باز کرد شروع کرد به غذا درست کردن. وقتی روغن روی غذا میریخت، یه طرف برنج رو روغنی با یه رنگ دیگه ریخت و اون طرف رو یه روغن دیگه. شک کردم و فهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. سر سفره که نشستیم آب خواستم تا بلند شه و به من آب بده. منم ظرف غذا رو چرخوندم و سهم خودم رو با اون عوض کردم. وقتی غذاش رو خورد، شروع کرد به عدسه کردن. با عدسه ای که توی صورت من کرد، روغنی که از دهنش بیرون پرید، پاشید توی صورت من و خورد کنار دماغم و شد این گوی طلایی که تو می‌بینی. خود درویش هم شد یه مجسمه تموم طلا. منم از فرصت استفاده کردم و کلیدارو برداشتم و رفتم سراغ اتاقا هر دری رو که باز میکردم اتاق پر بود از دخترهایی که مجسمه طلایی شده بودم گشتم و گشتم تا رسیدم به خواهرام. دیگه جون نداشتن دیدم دوتا افعی از آب دهنشون داره میمکه خواهرم گفت روغن برنج از آب دهن افعی هاست که به هر چیزی بزنی تلا میشه. پس از اونجا فرار کردم و رفتم پیش پدرم. وقتی پدرم رو پیش خواهرم بردم دیدم مردن. خلاصه من ثروتمند شدم و همه مجسمه های تلا و اون روغن های بسیاری که اونجا بود مال من شد. منم اون روغنها رو به فلز میزنم تا طلا بشه و ظرف غذای مردم رو از این طلاها درست میکنم و اینطوری مالی که خدا به من داده رو به رضای اون خرج میکنم و به فقرا میدم درویش که ماجرایش شنید دست زنش رو گرفت به شهر خودش برگشت و ماجرا رو برای حاتم تعریف کرد مملکت ها رو یکی کردن و صفره نعمت را اینجا و اونجا په می و به مردم روزی می رسوندن.